دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده آمد افسوس کنن مقبچه باد فروش گفت بیدار شوی ره رو به خواب آلوده شست و شوی کن و آن گفت خرابات خورام تا نگردت تو این دیر خراب آلوده به هوای لب شیرین پسران چند کنی جوهر روح به یاغوت مزا بالوده به تهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چود تشریف شباب آلوده پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در که صفایی ندهد آب تراب آلوده گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می نابالوده آشنایان ره عشق در این بحر عمیق قرخه گشتند و نگشتند به آبالوده گفت حافظ لغز و نکته به یاران ما فروش آخ از این لطفه به انواع اعتاب